ملت پول لازه من بلا خونه اتجاره میدن سران کاری از دستشون بر نمیاد ولی استفانه میدم این شوقه ایچی دستشونه ولی اصلا نمیشن نمیخوان این گا از سر انگوشت تو امضا نمیدم دمه گم که بین بد و بدتر انتخاب نمیکرد تا تلالا رو بیاد پایین یعنی کسی نیست رازی از برزمم نکرد پوزه بم بزنده دهنه گک چون یه وقت بگشن زوزه سیاه روزش، مالی نمیشه بخوای پوزش میطلبه بخشش، جای ازنی نیادم فروشکا سفده صبح خونه آجمه تی از خرخ خارجی رفتن تو دل خاک خوبا خست شده شکلش، شریف خالکوبا صنعتی سنتی رس رس. در دست رست سنت کرده رفته، چشمی رون زده از صدقه یا شهلاسم رنگ خونده از سز نمیرسه به پچه تو مون هتا بلو بریم نرده بون نره بد بهت نمیرسه میوه چون تو باغ نیستی من تر رو با میشی شاهده دومت تو قرورت قاتلت شده واجه خوبم شایش شدر نه نه من قریبی کاسه به گله بست تر کن هر جیبمون شک چک خود در حال ساخته یه مجموعه خفندتر از کچ خورد نر سراغ اصل مطلب بحث و عوض کن بزن جد خاکی شاسی بلند افرود بازی کف خاف تره کار خوابی خوردی تا ما چو دادی خبرتون تازیدش ما رو شاشید کاسه دختر از آشولاشی و ولنشی هستن نلی جا تو باختی چره هوجو هوجو بجی اگه ببهونی وقت چیت خودتو بیل بذن متن تک سکو وکلاق جیر بدن نرخش عربو بخورن و سیر بشن بوستمو شویدو اجیل به دست ملت صف کشیدن فیلم و عکس میگیرن تو یکی بمیره وسش خفلا گیره دور چو به pore مود خوره مرده پرست متاسفن این چیزو شویده پرنگ آتشو زیر خوکاسته چول کمن ترو خشکو قل شده از قلا زیر دست اونو که خمار شده خوب کردن و سخون تر کندن رنگادس کردن نبوغ قلمو ناب تو علموت گو به چشم می بینره چند تا بخورد وقتی دلت میگیره شاید با چه دیده به انگامی شد په چون تو په میده روشن فکر چرا خاموش شاسه میاد پسته میره سختی نلی شاشیدن اجازه پیش تاشک شا که یعنش قدر میکنه کاب پیش بعد توقصر خون نباتد دست مردم عادی پول ندارن در رود مسئولین این تور فاه با زمین میگه تعریم هیچ تأثیری نداره روی آدم خود کفا میشه داره جک برات میگه از پشت تیری پولات مجازی میشی از پشت تلفون بولبول زبونی میکنه قناری ملالی نداریم م قبزه رو پس بدون چه اونمره چه امره خاکرد و شرف داره بموندنه ما تو این سایدونی چیزی رو درسته میکنم اگه بر نمیرفتی کل افته میشده ای سرگردنه هر ننه هرمله ایو که بیا با علفه باسه همی اونجه میخواد جدا نمیکردیم کشته میداده سوه تفاهم داره شلیک میشه گله فرار کن